فصل ششم عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. در روز سبت عیسی در کنیسه شرو به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدن با تعجب می‌گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست مگر خواهران او در میان ما نیستند به این سبب آنها از او رویگردان شدند عیسی به آنها فرمود یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانوادهیش او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت آنها را شفا دار و از بی آنها در حیرت عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده های آن اطراف رفت بعد دوازده شاگرد خود را احزار کرد وانها را دو به دو به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند همچنین به آنها دستور داده گفت برای سفر بجز یک اسا چیزی بر ندارید نه نان و نه کول بار و نه پول در کمربندهای خود فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید عیسی همچنین با آنها گفت هرگاه شما را در خانه قبول کنن تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمان و هر جا که شما را قبول نکنن و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید. و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها دتکانند پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می‌کردند که مردم باید توبه کنند آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیار یا با روغن تطهیر کرده شفا دادند هیرودیس پادشاه از این جریان باخبر شد چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود بعضی می گفتن یحیای تعمیددهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسن. دیگران می او الیاس است. ادهیم می او پیامبری مانند سایر پیغمبران است. اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت این همان یحیا است که من سرش را از تن جدا کردم او زنده شده است. هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا، دستور داد یحییی دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند هیرودیا قبلا زن فیلیپوس برادر هیرودیس بود یحیا به هیرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج كنی هیرودیا این چینه را در دل داشت و میخواست او را به قطع برساند اما نمیتوانست هیرودیس از می میترسید زیرا میدانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را مینمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد هرچند هر وقت سخنان او را میشنید ناراحت میشد سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد هیرودیس در روز تولد خود زیافتی تردیب داد وقتی تمام بزرگان و عمرا و اشراف جلیل حضور داشتند دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردن. به طوری پادشاه به دختر گفت هر چه بخوایی به تو خواهم داد. و برایش سوگن یاد کرده گفت هر چه از من بخوایی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فورا پیش پادشاه برگشت و گفت. از تو میخواهم که در همین ساعت سر یهیای تعمیددهنده را در داخل یک سینی به من بدهیم. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فورا جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد، جلاد رفت و در زندان سر او را برید. و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبرهای دفن کردند رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به عرض او رسانیدند و چون آمد مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند عیسی به ایشان فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند اما اده زیادی آنها را دیدن که آنجا را تک می‌کردند مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها به آنجا رسیدند وقتی عیسی به خوشی رسید جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت چون مثل گوسفندان بیشبان بودند بس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی بیان کرد، چون نزدیک غروب بود شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است روز هم به پایان رسیده است مردم را مرخص بفرما تا به مزرعه ها و دهکده های اطراف بروند و برای خودشان خوراک بخرند اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید آنها گفتند آیا می خواهی برویم و در حدود هزار و 1500 تومان نان بخریم تا غذایی بانها با بدهیم عیسی از آنها پرسید چند نان دارید بروید و ببینید شاگردان تحقیق کردند و گفتند پنج نان و دو ماهی ایسا دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علفها بنشانند. مردم در دسته های صد نفری و پنجاه نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی پنج نان و دو ماهی را گرفت، با آسمان نگاه کرد و خدا را شک نموده و نانها را پاره کرد و به شاگردان داد، تا بین مردم تقسیم کند. او همچنین آن دو ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردن و سیر شدن و شاگردان دوازده سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردن. در میان کسانی که از آن نانها خوردن پنج هزار مرد بودند. بعد از این کار عیسی فورا شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آن که ایسا با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت سه و شش صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت. و میخواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبه است و فریاد میزدند. چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کن شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند آنها از دریا گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده در آنجا لنگر انداختند وقتی از قایق بیرون آمدند مردم فورا عیسی را شناختند و با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بسترهایشان به جایی که میشنیدن عیسی بود بردن به هر شهر و ده و مزرعی که عیسی میرفت مردم بیماران خود را به آنجا می‌بردند و در سر راه او میگذاشتند و از او التماس می‌کردند که به بیماران اجازه دهد دامن قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس می‌کرد، شفا